آن گنبد مسجد جمکران است. C'est le dôme de la mosquée Jamkaran. بله. آن گنبد آبی و زیبای مسجد جمکران است. Oui, c'est le beau dôme bleu de la mosquée Jamkaran. چه مسجد بزرگی است. Quelle grande mosquée! خیلی هم شلوغ است. Il y a aussi beaucoup de monde. بله، مردم زیادی از شهرهای قم و تهران به اینجا میآیند. Oui, tous les mardis, beaucoup de gens des villes de rome et de Téhéran ici. خیلی شلوغ است. comme c'est bondé ماشین را کجا پارک می کنی Où gars-tu la voiture سمت راست در آن خیابان ماشین را پارک می کنم. A droite, je garai la voiture dans cette rue. Marem Do qui شروع می شود? Quand commenceront les cérémonies de la prière N Une demi-heure plus tard Nam Nous avons le temps de faire la prière.